شنوتو با افتخار تقدیم می کند کتابی کتاب شم شما دهان علوشگی برنامه کتاب امشب با بازخانی این رومان ارزشمند بینمایان اثر نمیسنده بزرگ فرانسه ویکتور هوگو در خدمت شمایی از شما دعوت میکنم به ادامه ماجرا توجه کنید در طولون از زندانیا سخت کار میکشیدند یک روز هنگامی که در بین محکومان در یک کشتی نظامی کار میکرد یک نظامی نیروی دریایی در بالای دکل دچار حادثه شد و ژان والجان اجازه گرفت تا جان او را نجات دهد اما بعد از نجات او خودش را در دریا انداخت و فرار کرد با این حال همه فکر کردند او در آب افتاده و غرق شده است و روزنامه‌ها هم همین همینجا نوشتند ژان والجان درست شب کریسمس به نزدیکی های ده می رسید. هنگامی که در تاریکی شب در جنگل به طرف مسافرخانه تناردیه میرفت به دختره که وحشت زده و لاغری برخورد که با دستان یخ صد بزرگی را که از خودش بزرگتر بود و با آن از چشم آب آورده بود، به زور به همان مسافرخانه‌ای که در آن کلفتی میکرد کرد می, کر می سطل را از او گرفت. در راه نیز فهمید دخترک هشت ساله لاغر و رنگپریده که لباسهای پاره داشت همان کزت است بازار کریسمس هنوز باز بود به در مسافرخانه رسیدن که رسیدند دخترک از او خواهش کرد سطر را بدهد وگرنه خانمش تناردییه کتکش خواهد زد با ورود او ناسزه های خانم تناردی شروع شد اما با دیدن ژان والجان که اتاق میخواست رفتارش فوری عوض شد چند لحظه بعد خانم تناردیه میخواست کوزت را که یادش رفته بود نان بگیرد و پول نان را هم گم کرده بود به باد کتک بگیرد اما جانوال جان به دروغ گفت او پول را پیدا کرده است و سکهی به خانم تناردیه داد. کمی بعد خانم تناردیه باز میخواست کوزت را به خاطر کار نکردن کتک بزند و این بار جانوال 5 جان پنج فرانک به خانم تناردیه داد تا آن شب کزت به جای کار برای خودش بازی کند. خانم تناردیه دست بردار نبود کمی بعد دوباره سراغ کوزت آمد تا او را به خاطر بازی با عروسک دخترانش اپنین و ازلما کتک بزند. این بار جانبال جان بیرون رفت و عروسکی قد خود کوزت به سی فرانک خرید و به کوزت داد. آقا و خانم تناردیه خوشکشان زده بود. حد زدند که مرد پول است و رفتارشان با کوزت عوض شد. روز بعد جانبال جان رو به آقا و خانم تناردیه که میگفتند با همه نداری ماجوران مقاریج کوزت را هم که مادرش مرده بدهند پیشنهاد کرد کوزت را به او بدهند حتی حاضر شد 1500 فرانک به تناردیه که به دروغ گفت تا حالا خیلی خرجش کرده بدهد به شرطی که اسم و نشانی او را نپرسد تناردیه قبول کرد اما بعد از رفتن کوزت و ژانوالجان پشیمان شد و آنها را تغییب کرد و میخواست پول بیشتری از ژانوالجان بگیرد که ژانوالجان با خشم او را مجبور کرد برگردد ژانوالجان با کوزت به پاریس رفت و در آپارتمانی اجاره‌ای زندگی تازه‌ای را شروع کرد. در این هنگام ژان والجان که تا کنون همیشه تنها بود و هرگز پدر، عاشق، شوهر یا دوست کسی نشده بود، برای نخستین بار عشق پدری را نسبت به گوزنت با تمام وجود حس کرد. اما تقدیر چنین بود که روی آسایش نبیند. ژاور به اداره پلیس پاریس کمک کرده بود ژان والجان را دستگیر کنند. برای همین معاون پلیس پاریس از او خوشش آمده بود و او را برای خدمت به پاریس آورده بود مدتی بعد جاور تصادفاً به گزارشی از پلیس درباره باره شکایت مسافرخانداری از شخصی ناشناس در دهکده منفرمی که دختری به نام کوزت را دزدیده بود برخورد جاور می دانست مادر دختر کیست؟ و چون قبلا پلیس جان والجان را هنگام سوار شدن به کارسکئی که به این دهکده می رفت دستگیر کرده بود شک کرد که نکند جان والجان هنوز زنده باشد www.shinoto.com چندی بعد بازرس جاور از طریق خبرچین های پلیس شنید که در خانه ای در پاریس آدم عجیبی زندگی می کند که کسی اسمش را داند اما دختر 8 ساله همراهش میگفت از منفرمی آمدند. جاور از طریق پیرزن سرایدار ساختمان جان والجان نیز فهمید که مرد گفته سرمایهگذار برشکسته است که اینک با سود پولش زندگی می کند. همین پیرزن گفت که او فقط شبها بیرون می رود و یک بار اسکناسی هزار فرانکی به او داده تا خرد کند. جابر یک بار جای گدای جلوی کلیسا که خبرچین پلیس بود و والجان هر شب به او صدقه میداد نشست تا چهره مرد را ببیند اما قیافه والجان را خوب ندید والجان نیز چهره جابر را به طور مبهم دید اگرچه مطمئن نبود که گدا همان جابر است جابر خانه‌ای در ساختمان والجان اجاره کرد اما یک بار که در راهرو بود، بود والجان او را از سوراخ کلید دید روز بعد جانوالجان همراه با کوزت از خانه فرار کرد ولی جاور که با چند پلیس خانه را زیر نظر داشت او را تغییب کرد جاور توانست فوری جانوالجان را دستگیر کند چون به خاطر ظاهر غلط انداز جانوالجان هنوز شک داشت مرد تمام جانوالجان است علاوه چون بعضی از دستگیری های خود در آن ایام در مجلس و مطبوعات آزاد جنجال به کرده بود می ترسید که مرد را اشتباهی دستگیر کند از طرف دیگر به خاطر اینکه دستگیری محکومی فراری موفقیت بزرگی بود میخواست سر صبر و مثل ای که با موش بازی میکند او را دستگیر کند و این موفقیت را با کسی دیگری در اداره پلیس تقسیم نکند او وقتی موقع تقریب دید که رفتار مرد مشکوک است فکر کرد شاید پیرمرد رئیس دوزاست و اگر او را دیرتر دستگیر کند به همدستانش را هم بشناسد جانور جان که متوجه شده بود او را تعقیب می‌کنند به آن طرف رودخانه رفت اما بعد از گذشتن از چند خیابان کوچه در انتهای کوچه بنبستی گیر کرد او در زندان بالا رفتن از هر دیوار راستی را به خوبی یاد گرفته بود اما مشکل کوزت بود تناوی را که با آن فانوس‌های گازسوز ها را بالا و پایین می‌کشیدند برید و به کوزت گفت خانم تناردیه آمده او را ببرد و او نباید سر و صدا کند سپس کراواتش را دور بدن کوزت و یک سر تناب را نیز به کراوات بست و از دیواری که ظاهرا دیوار باقی بود بالا رفت. به بالای دیوار که رسید کوزت را نیز بالا کشید. سپس هنگامی که فریاد گشتی ها و پلیس را میشنید کم کم از شیب بام به پایین سرخورد و در پایین آن به حیات وسیعی که شبیه باقی همانگیز بود پرید در حیات صدای سرودی مذهبی میآمد. آنجا صمعه خواهران روحانی بود. کمی بعد جان در تاریکی شب پیرمرد باغبان لنگی را دید که زنگوله ای به پیش او رفت و از او کمک خواست اما ناگان فهمید پیرمرد باغبان همون بابا فوشلووان است که او چند سال پیش جانش را در زیر گاری نجات داده و برای کاروان صومعه فرستاده بود. در آن صمهه هیچ مردی به جز بابا فوشلووان نبود. برای همین خواهران روحانی از بابا فوشلووان خسته بودند، زنگوله به پایش ببندد تا از رفته آمد او با خبر شد با فشلوان که خانهاش در باغ بود به ژان و کزت جا داد نیز سپیده صبح دماغ و ناراحت به اداره پلیس برگشت فشلوان نمیدانست دانست یا به قول او پدر مادلن چه کرده اما جانوال جان جان او را نجات داده بود و همین برای او کافی بود تا به او کمک کند برای همین چند روز بعد پیش خانم رئیس سومه رفت و گفت که چون پیر شده است و کار سومه زیاد و سخت است می خواهد برادر پیرش را که باغبانی ماهر است و نوه دختریش نیز با او زندگی می کند پیش خودش بیاورد تا به او کمک کند خواهر روحانی سومه نیز پذیرفت به زودی جانبال جان را نیز در مدرسه شبان روزی خواهران روحانی گذاشت تا دست بخواند ماریوس کوچک و زیبا نوه دختری آقای ژونورمان بود ژونورمان از برجوه سلطنت طلب و اصیل قرن نوزدهم بود که از ماپلون انقلاب کبیر فرانسه، جمهوری و انقلابی ها بیزار بود وی ای پیر متکبر، شاد و شنگول و سابقا آشد میشه و عصبی بود که حتی هنوز هم گاهی پیر دختر 50 ساله و پولدارش را که با او زندگی میکرد با عصا میزد او که سنش از نود گذشته ولی هنوز دندانهای سالم بود و موهایش نریخته بود ورشکست شده بود و اینک با سود ای که داشت زندگی میکرد او دو دختر داشت از زن اولش دختری داشت که پنجاه سالش بود و هنوز ازدواج نکرده بود و از زن دومش دختری رمانتیک داشت که با مردی قهرمان ازدواج کرد سرهنگ پون یکی از فرماندهان ناپولون که نشان لژیون دونور را به خاطر شجاعتهای بی در جنگ ها از ناپولون گرفته بود. برای همین هم پیره از همان ابتدا با این ازدواج مخالف بود و حتی بعدها نیز حاضر نبود. ریخت داماد به اول خودش قداره بند و رازنش را که قبلا از مدیران ناپولون بود ببیند. این بود که بعد از مرگ دختر دومش در سیسالگی سالگی با دامادش شرط کرد که اگر میخواهد ماریوس از ارث او و پیر دختر دیگرش که ارث زیادی از فامیل مادرش برده بود و تنها وارثش ماریوس بود محروم نشود، باید دیگر هرگز او را نبیند. سرهنگ پنمرسی هم برای سعادت پسرش در آینده این شرط را پذیرفت و ماریوس از زمان نوزادی پیش نورمان و خاله بزرگ خود بود. از آن موقع ها ماریوس پدرش را ندید بلکه حتی آقای نامه های سالی سالیکبار پدرش را نیز به او نمیداد هنگامی که آقای ژیونورمان به محافل اشرافی و سلطنت طلب میرفت همه از زیبایی ماریوس هفت ساله تعریف میکردند اما به پدر او انقلاب فرانسه و ناپولئون بد و بیراه میگفتند ماریوس چیزی از پدرش نمیدانست و فقط به دلیل حرفایی که در محافل پشت پدرش میگفتند، از داشتن چون این پدری خجالت میکشید. از سوی دیگر در همان موقع، پدر پنجاه ساله ماریوس، یعنی سرهنگ سابق جورش پونمرسی که پس از بازگشت سلطنت مبغوز و منتظر خدمت شده بود، در شهر ورنون در گوشه ازلت و تنهایی باغبانی با میکرد. اما یکشنبه بهآ به پاریس میآمد و در کلیسایی که ماریوس كوشولو با حالهاش میرفت ماریوس را از دور میدید و اشک میریخت کلیسایی که ماریوس کوچولو میرفت پیرمردی به نام مابوف که سرپرست کلیسا و برادرش نیز کشیش شهر ورنون بود اتفاقا سرهنگ کنمرسی را هنگام عشق ریختن دیده بود. با او آشنا شده و بعدها با برادرش در ورنون پیش او رفته و ماجرای او را شنیده بود. همین پیرمرد نیز بعدا اتفاقی با ماریوس آشنا شد. ماریوس، پیش معلم سرخانه درس خواند و بعد به دویرستان و بالاخره به دانشگاه رفت تا حقوق بخواند. در این هنگام اونی سلطمت طلبی متحصد بود هنگامی که 18 سال داشت یک روز آقای ژیونورمان نامه ای از پدرش به او داد که نوشته بود به زودی می میرد و خواسته بود ماریوس را برای آخرین بار ببیند ماریوس به ورنون رفت تا پدری را کرگز ندیده بود و احساسی نسبت به او نداشت ببیند. اما هنگامی به خانه پدرش رسید که او مرده بود پدرش فقط برای او وسیعتنامهی نوشته بود و در آن ضمن اینکه عنوان بارانیش را به پسرش داده بود نوشته بود که در جنگ واترلو گروهبانی به نام تناردیه جانش را نجات داده و او احتمالا در منفرمی ای دارد پسرش نیز باید هر کاری از دستش می برای تناردیه بکند دوستان عزیز خسته نباشید از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب سه بخش بازخانی و تنظیم رادیویی رومان بی نوشته ویکتور هوگو را با تنظیم مجدبا گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید خدا نگه دارم. منتصر بخش بعدی این پادکست باشید www.shenoto.com